اللهم اشرنا جميع گشره نوان و رحمت يا ارحم شد در شرایط خنجی بری شمالی رو که مرحوم لایینی علام تقریب تقریر توضیح دادیم میدادیم رفیق در امر چهارم که به اصطلاح ایشون فرمودند در شرایطش این است که ان یکون دل این به خصوصیه دست کنو به هی سکان اجمال متعلق ممایست از این تبدو در خکمه واقعا از بسید که بازشون از خصوصیت همونیست که ما در کلال بحثان ازشون گفتیم اطراف بیشون تحبیر به خصوصیت کرد موطیم طرف چون گفتیم در علم اجمالی جامعه داریم به طرف داریم تحبیر با این طرف میدونی که از این دو کار نجسته خلولبات دن تردد. به جای تردد همان خصوصیات، این از خصوصیت داره. من اول مطلب یشون توضیحی ای توضیحه بعد اگر من هر جایی مناسب شرط از ببین بهم بگو یشون از کردن یه مثال بوده ولی اون مثال و حتی با قائد تصویر به این قائدش اول فرمان. اون مثالم بوده از کردن دو در هم یک در هم کسانی شخصی. ودیعه گذاشتن بعد یکیش گم بشه مثلا دز ببره ایشون بخواد بگن که اونجا ما حکم میکنیم هسب قاعده به شرکت به اینکه اون دو رو باقی باقیمانده شرکت وخ این شرکتی که یشون قائدا مروم طبق <تصفيق> این اون دو درحم هم سه قسم بشه این مراد نا چون من, من اینجا این اشکالیشونی اینجا بگم آمین خواستم مراجعه کنند مرگون مستاد از کرد این فروع رو دارن اما این فرو رو جای دیگه اره این بودند که فرقیشون در اینجا دارند در این کتاب مثباه این چاپ اگر آمین خواستم نگاه کنند بردیشونی ایچون بعد از این که میگن که شرکت بحثه شرکت رد میکنن اشکال میکنن میگن شرکت درستین سفقی شست و شیش. و ثانیان انلاد تا سلط درهم و هو سلط ها هم به صاحب و و هو و به میگه این اگر این مبیون رو بگیریم باید دو سلسه این سه درهم رو دو سلم یکی یک سلم دو درخن. که من دیروز عرض کردم یک سلم چار دانک میشه چار دانک میشه و دو سلم شم هشت و این طور و المحروض اندن من علاقه بذاره در گفت این طور من هم. در واقع که سه دانک بگیریم این دانک تعجب از مربوم استاد چجور اشکال کنم من متحیصت میکنیم میفرام شوش و اینکه شوش هاگر ناینه خب ناینه حرفش هم اینه که ما به رواید عمل نمی کنیم لحظه ناینه اینه یا باید بگیم به رواید عمل نمی کنیم. یا باید بگیم رواید سوشید میکنیم نه اینکه ایشون که لازم این کلام و خود ناینه متفقه این لازم کلام هست اشباه نایمگ شرطت میشه ولیزا دو سروان دو درهم رو باید دارید نه نیم درهم و ایشون خود نایم در صفحه هشت و و مابره لسه درهمه در وزعی لابد من عدم خلقه درامه و ایلا کامل حکم و اگر خلقه بشه به ازامی چون قصد و من تعجب بعد بخمو خود من در نقش من یک شوقهی بیاد که شاید مطلب من این واضحهی نبود که استاد شاگرد داره چیکار می‌کنه اونجوری که طلب استادش نشه بعدش نمی‌ونه و ایشون تاکید یه حکم به تفصیلش خود اون روایت هم دیگه باید خمدش کنیم بر اساس عالم خارج و سر قواعد این که ایشون منصوص اینه یا باید بگیم منصوص رو قبول نداریم البته ایشون نمی‌شونه ایشون سازش تکونی سرات تکونی صدا واسه الله سکونی یا بگیم منصوص و قبول نداریم که روشنگ این اشکال استاد خوبه قدر بسنیش لازمش اینه که شما نیم درهم نگی، چون نیم درهم سه دانهه شما چار دارن ملتظر به این لازم برگوشی ملتظر این لازم که نکس درهم نیست، دو سه دو درهم به یک سه دو درهم درستیم کی؟ که آره استادمون شد ثانیه سرنه اشکال میشه. من نفهم بودم اشکال استاد را نفهم علایه حاله این که این که خیلی قبول مکنی در ساست عدم خرد اما اگر خرد شد نه تثلیف هست و با اون رو بسیار نمکن که چیم ممکنه که از رو قبول نداریم اصلا مطلب مختلف قبول نداریم برد به قاعده به قاعده شکر کرده شد. این یه مطلب. بساید به قاعده کنم ظاهرن که. طرفتیش شرکت داره از این امتظار انبال شرکت داره تخییز بخونه تصدقه هم به نظر من روایت بهده که شرکت نیست مثلا روایت اینکه شرکت نیست, از اینکه شرکت نیست. اینکه اینکه شرکت نیست. اینکه ما از روایت بیشتر قاعده عدل و امساق چون یه درهم بدیم به در اون یه در اینش کار بدیم به دو درهمیه حق اون داره بشه بدیم به یک هر کدوم به مقدار مثلا قادر متعارفن خلاف شده باشه من فکر می‌کنم قاضی عبدالحساب درست شه خدا همین و شرکت معنیش اینه که شما دو نفر هر کدومتون یک سوم این جو درهم می‌خرید یک یک سوم این شرکت معنش اینه یعنی شما اول ببینید اما هر خلالی تو من توضیح شما اول یک هم داشتید این آب دو درهم الان هر کدونتون یک سلس داریم و دو سلس یکی یک سلس یکی دو سلس این تبدل خوب دقیق کنیم این خلاصی حرف نایی نیست این تبدل منشه میشه که بگیم وقت نایی میگه این تبدل از کجا آمد خوب دقیق کنیم این تبدل منشأش که شما جهر داریم چون نمیدونیم یعنی چون مخلوق شده الان تشریف نمیدیم اگر منشه این تولد این شد خوب دقت بکنید پس در واقع اصلا عوض شد حکم عوض شد این کلاسه از رو همینی شد شما اول مالک یک در هم بودید حالا مالک یک سلسی اصلا عوض شد حالا که عوض شد در اینجا علم اجمالی محسن نیست ایش حرفش حالا این حرف اینشان رو بخواییم با تحلیل دقیق تری بگیم چون ایشون احتمالا در درستان شهر دارم مقرر رحمال الله خود رحزشون هم مقرر هم مقرر لح تشتیر دارم مجرد میسن این نقطه فنیش چیاره؟ نامی خواهده کبی درستم هم ما نکته فنیش رو ارز اولا نازم من عباس نامی بخورم چون برزت ها افتاره بعد ایشون دیگه ولیکن نال اقوا بله بله بعدشون میگن که فه این نهو تب سلو چرا به عبار از این اخرایی ای اعتبر بی تأثیر مجموع الموضوع. من کنن موضوع منن موضوعات لکی اعتبر این برخصوصیه یعنی اگر ما خصوصیت و خصوصی این یک درهم و اون دو درهم رو این بشنراشیم این ادم این به خصوصیت حکر رو عبرد میکنه اول شما مالک خصوصیت بودیم هران مالک یک تقوامی کسا عبرد شد دو تا شور من توضیحش خودم ارزم برای تو روشندتر بشه ولی بله ازایشون میگه شرکت حاصل میزن این در خلق چرا شرکت حاصل در اختلاف چون میکیت خصوصیت از بین میره و اشاعه پیدا میشه بله ایشون میگه که در خلق و هنکه و هنکه بردار گفتن پیدا نمیشه و که داله در آنه لیکن نه لعقوا حصول و شرکت فیه ها اگذن در آنه هم, هم, هم میشه. و سر را به حصول شرکت به خلطر انبال این و سر اون قاعده آمند اختصاص به دراهم نداره ایشون گه اختلاف چرا موجب شرکت میشه؟ چون شیر ملکیت از امور اعتباری اگر خصوصیت از بین رفت مثلا شما گندم چیز گندون باشید در چیز گندون باشید جدا بود گندون شما بیسیل گندون برادر جدا بود بعد اشتباه هم بچه آن رو مخلوق کرد این خصوصیت که از بین شریک ملکیتی چه عوض کردو، یاد نشیدیم. اول شما مالک ده کیلو بودین، اون مالک 20 کیلو، ذرافت متوجه. بعد آمد ای این دو رو با هم محدود کرد. الان شما مالک ده کیلو نیستین، مالک یک سهمی. خرد آمد، خرد عوض نکرد. همون جربیه رو همین‌جوری آمد عوض نشد. اون 10 کیلو سر جورش خودش رو می‌شیلام سر بر اثر اختلاف اختلاف اون خصوصیت از بین وقت تا خصوصیت از بین وقت رو دقت بکنیم نه اینکه که شارعه یک حکم ظاهری میکنه خوب؟ نکته فرمی رو منطقه شاره حکم ظاهری میکنه اصلا اول سور اول شما مالک ده کلومی حالا مالک سلسی نه ده کیلو. لذا تا وقتی مالک ده کیلو بودیم اونم مالک 20 کیلو کسی می ده کیلو از اون آقا می دوزیم خب می دوزیم در شما, شما مالک کیلو هست. اما اگه شما مالک سلس شدیم کسی آمد از اون پنج کیلو دوزیم این پنج کیلو از هزار احساس می شه این فرزار احساس می شه شد، می گه وقتی زمال خصوصیت شد شارع میاد مرکیت عمل می, ایشون می اجمال خصوصیه. موجبند لبطلان اون خصوصیت و عدم اعتبار اون خصوصا برای مالکش که در مبادرت میاره که یه از یه قسمتی برای این ها من این مطلب داریم تمام بخونم یه توضیح بدن بر شما مسئله رو یک یه ترتیب و در جمله الخلف و فی باب الاموال، یونجه با شرکه اختلاف موجب شرکت که من اسمش بذاشتم شرکت قهنی که من که آب یه شرکت قهنی در, در مقابل شرکت عقلی اسمش اینطور شد و بطلان خصوصیت افراد اون خصوصیت از بین میرون کما علیه الاسحاب و از به روایان نه الحکم با شرکه اشکال اینجا تنه خود نایینه هم مرتفعه یه تس و به صورت خر شرکت در جایی میاد که اختلاط بشه سوال اینه دو درهم و یک درهم اختلاف هست یا نه اگر شما فرض شیر داشتید با شیر اون آقا با هم مخلوط شد برای این اختلاط. گندم داشتین با گندمون آقا این اختلاف گنگون داشتیم با نو خود اختلاف می کنم یک طرف بگو خود یک طرف اختلاف می کنم شکلت پیدا نمیشه حالا درهم داشتیم با درهم سوال نه که اینجا میشه اینجا میشه و اما فی صورت اشتباه المال و عدم تمیزه احد همان الاخر بلا هر اما اگر دو مال بشه بس تمیزی نواشه فلحکم و فیها هواد تسالح اول قره و تفصیل کلام فی که ممکنون الان محله من فکر میکنم اشکالاتی که مرحوم استاد و مرحوم آزیا یا نایمی هم کردم برای روشن روشنگ رو. هم مرحوم آزیا هم مرحوم استاد اشکال کردن به نایمی. که بابا ما دو چیز داریم یکی احتلاعات و مالی داریم یعنی یک این است که دو تا مال تمیز پیدا نکنن معلوم نباشه مال کی به کیه یکی ای مسئله داریم که مسئله اختلافه اختلاف یعنی چی؟ یعنی صورت اون مال از بین بره اون صورتی که مشخص هر کدوم بود و این دوتا مال قابل تمیز نباشه نه قابل تمیز یکی ارپن حساب باشه اما اگر فرض یکی نشه فرص این کیلو گندم با 100 کیلو نخود سخت هم هر تشریفش اون جدا کردن اینجا اگر سخت شد اینجا شرکت سیداره میشه یعنی در درباق شرکت اختلاطه نه عدم علم شما در مانه نقهی دارید یا عدم علم دارید دقت رو کنید خود ناییم نامون این میشه نشان داد نه نامون این یعنی چی یعنی اینکه این یک واقعیتی داره من نمیشناسه اختلاف نظر واقعیتی نداره یکی کلار حتی که فیلم باقی اولن عدم این به اینهاهایی حبایه دیه این شخص آدم این مجموعه لانهایی نظر آف مجموعه لحمسو شعرش ایوا مثل مجموعه حليبش ایوا اشال ازیا هم رو که آیه خویی هم همین اشغال‌ها دارن این اول آیه خویی اینه اشغال ازیا دوز در حاشیه چاپ برده برهان این نکته‌ایه که شما فرمودین آوی نایینی فی خلق کل متماثله این اشکال معنیش که در تماثل هم قائل به خفظ مثالی که اینجا می‌ذارم مثلا ده تا یکی تا یکی 20 پس بگیم نصفت اول شد لسید به مسئله سور نمیشد بیشه ابای این اباین هرد و اباین نه چونجا چی میگیم من از سیاب و غیرها پس سو لباسم باید میشه کرد شد این سو باید منتظر برسیم و هوا کم آسران فل اولا ادم و تحضیف شرکه و الخط ان الامور لفی یه سب دلخل شیعن واحدن کلمایات او اورثن کل حبوبات بروازی که معیار این در نظر او یکی بشه یا اورغ یا به دقت مثل حلیبه، این. دو شیر، دو شیر دقیقی اما مثل حبوبات و اما مثل دراهم بعد الخلط ایزر متعدز و کوشش اشاره اصیل یعنی بحث این نکته که با عدم علم شما خلط پیدا نمیشه آن من توضیح میدادم که حرفا روشندتر بشه بل یک ریفی ها ما و عدم المید این عدم المید که ایشون میگه مرموم آزیار اشارت به کلام نایمی چون خواد نایمی میگه و اما في صورت اشتباه الماله و عدم تمیز فلحقمت یا از تسالاتی که جایی شرکت میدید ایشون میگه در مثل در آن هم همینطوره خرف نیست پس معلوم شد که بین این دو بزرگوار یک بحثی در این که آیا دیره هم بادیره هم خلطون یا عدم المیل تماید نیست که الان من توضیح شرط میکنم سورت نظیر صورت عدم المخلط نظیرمونه حالا اصلا چون یه سا دیگه کشیده شد من یک توضیحی لاجب به خود اصل خلاب نائمی اصطفانه یعنی به ذهن خود ما بسید معلوم نه که واقعا مرد فوق العاده واقعا مرد مرده است. من به ظاهران همین بحثه از کلامش خلال بین که آیه این روزی حالشون حالش. اینکه با هوای خوشمردی استادمون صحبت می‌دوره جبه است. اصلا اعلم علمای شیعه‌ای که گفته جو محقق الیزی شون به نظر من اون اعلم و عالم شیعه از سطح تا خب واقعا است. میشه میگه بس چون نشفودیم ما یادته کردیم جدی بود یا انصافا خب محلوم نایانی فوق العاده از این نمیشه این کار کن این مطلبی ای که ایشون فرموده که گاهی میشه نکسیش اول بگن، ایشون بخواستین بحث به بکنه به ایجرش رو علم مانی ایشون میگه گاه اوقات علم به خصوصیت تأثیر داره من عرض کردم علم شنش تریحیت این چرا رو نعرض دارم اما گاه اوقات علم تأثیر داره یعنی که تأثیر داره یعنی ایشون میگه گاهی اوقات اصلا حکم عرض میکنه یعنی اگر علم باشی یه چیزه جرد باشی یه چیزه ببینید حکم عرض میشه این عادتا نیست گاهی اوقات اینجوریه اگر بنا شد علم حکم رو عرض بکنه دیگه علم اجمالی ما اثری. مثلا شما الان دهکی شیر داریم اینجا علم داریم مال شماست اینجا شرکت کنیم اون آمان بیستی روشی داره اما اینا با هم مخلوق شدن شما ما یکی شدن ارفن مطلی که اون خرده، بحث علمی چون خرده. شد مرمون میگه اگر کاری جوری بشه که علمه به خصوصیت هم از بین داره مثل خرده. تا علمه به خصوصیت هست یک نحوه ملکی علم علمه به خصوصیت که هست یه نحوه خوب دقیق بکنید، یعنی چی؟ یعنی میاد علم تأثیر میگذاره در تبدل حق رو چند شد نقطه پنی؟ حالا اگه من که خیلی پنیتر برای سوما عرض بکنم که تو علم اجمالی خیلی برد ببینید در هر موردی ما اینجوری بحثش کنیم در هر موردی علم به خصوصیت به تعدیر ایشان علم به طرف اطراق به منزله ای باشه که از تأثیر بگذاره خود علم نه طریق سر باشه حالا انها تأثیرش مختلفه خود درد یکی از تأثیراش اینه گاهی میشه اگر علم بود یک حکم داره اگر علم بود بسید حکم عوض میشه اعتبار عوض میشه اگر این طوری شد در این جوجه ها علم اجمالی منجز نیست چرا؟ چون این اثر رفته روی علم اگر اثر ره علم ما به کل معاهد منترکه علم نداریم علم ما ادعایه انفعالی نیست به کل معاهد منتر خصوصیت این که علم نداریم چون من احس کردم در تلاله بعد سر اساسی تنجیز علم اشمالی بعد نایین تو توضیح می دار. که ما تابع واقع باشیم هر جا که اثری تابع واقع باشه اونجا باز میشه چرا چون ما در علم ادمونی نکته اینه که من میدونم یک قسمه خون واقع شد و ببینید قسمه خون واقع شد چون میدونم واقع شد نفس من ابداع میکنه میگه از اینا بکن از این اشنا لغتو بکن اما اگر یک جایی آمد دین وقوع و بین شما علم رو آورد، گفت وقوع کافی نیست تحقیق خارجی کافی نیست علم هم میخواد اگر گفت علم میخواد خب در علم اجمالی که علم نیست حالا این انهایی داره یک نحوشی گروز ما گفتیم اگر علم موضوعی باشه این یک یه هم هم میشه معنی که ناینی اینجا میخواد بگه اصل مطلب ناینی دقیق لطیف اصل مطلب ناینی. و روشن خیلی واضحه چرا؟ هر اثری که رخ روی اند اون طرف این بار نمیشه. هر اثری که رخ روی واقع بار میشه. این خلاصه‌ی ای مطلب. هر اثری که رخ روی این یعنی این شما رو میخواد این بار نمیشه. هر اثری کنند روی واقع مثلا اجتناب از مجلس اجتناب از مجلس واقع ملاقی واقعیه در لذا اگر گفت اجتناب از ملاقی معلوم بازم نیجا وارد نمیشه این خصلت علم اجمال چون ادراک ابداعیه ادراک ابداعی نیمیاده که این درست بکنه اون نفتی فرمی روشنی شد پس این میار کلی من هر پیشم خیلی هم درسیبه خیلی ه هر جایی که علم آمد تأثیر گذاشت علم رو و به خصوصیت. یعنی چی؟ یعنی واقع لحاظ نشود. اثر اگر روی واقع بود، مفن واقع. چون شما چی بیدیم؟ یک قطر خون واقعا توی انا واقع شد. توی اینکه از انا ای. هر اثری که روی وقوع قطر خون بشه، اون بار میشه. اما اگر اثر اینجوری شد یا حکم اینجوری شد که روی علم به این که ملا علم، تا علم آمد باز نمیشه این نقطه تنگیز علم اجوالی حالا این علم دو طرف از باشه،, باشه پس تا علم آمد یعنی به که اگر علم بود یه حکم اگر علم نبود حکم عوض میشه اگر علم نبود علم به طرف و نه به جامعه چون علم جامع که کرد اگر ما افکان اینجوری داشتیم وقتی نا اینی میخواد در ما نه رو اینجوریه تا یک درهم این آقا مشخصه این مالک یک درهم، تا مشخص نشد با اون محروض شد اصلا موضوع عوض شد چیز دیگری آمد دیگه مالک درهم نیست مالک سلسه این شما یک درهم تیش اینا ها گذاشتی اون آقا دو درهم گذاشته بستش هم برداش هم محلول کرد میگه حالا که تو تمیز دیدی درهم این آقا دیگه شما مالک درهم نیستی به خاطر این پیدا نکردن به اون درهم مالک سلس این دوتایی این سه تایی سلس. انتقال پیدا میکنه از ملک درهم به ملک سلسی حکم عوض شد حکم از اعتباری تا اعتباره وضعی از احکام وضعی شما اول مالک درهم بودی حالا مالک سلس مال موجود مجرد. نه چون آثارش فرم کنه در تیجه چیه مرم اون چی میگه دیگه نه با دردگراهه شما هنوز مالک یک درهم مید. پس کلام در اینجا دو تاست خوب دقت بکنید روشن شد چی بخون یکی کبرا کبرا کاملا سریعه خوب اشتباه نشید آقایان هم بنایی در کبرا بحث ندارند اشتباه نشید روشن نقطه؟ داره. اگر جایی ما داشتیم که علم بخصوصیت اگر رفت مثلا امام آمد حکم عوض بشه اگر جایی داشتی دیگه اونجایی مجموعی منجد نهید اون سر تنگیزه این یک کلمه اون اثری که اون واقعه علم مثل نیاد مثل معبول سالی معبول سالی نیادی روچنی شد مجرد ناکه فرمی پس یکی کبرا داریم که اگر طرف و خصوصیت اگر علم تبدیل به جهل نبود اصلا عوض میشه هفت عوض میشه اونجا اصلا یک مجموعی منجب نیست این کبرا این کبرا درسته این کامرا است تا سفارش بدوشه. نوعش واسه. چیزی دیگه امکان ندیده قبلا انتظار ما میدونیم این یک درهم دو تا دو تا اعتبار قانونیه. اینقدر اون چه یک اعتبار عوض شد. شد. نه این یک رقم باقی مونده از نه ببینیم الان به یک بحث کبروی خوب روشن شد اشکال آزیا و آیفودی کبروی نیست بنایی. مثلا به فوق العاده عاده رفید و دقیقه و نکته فمنیشم به نظر ما خیلی روشن شد هر وقت بین شما و طرف مستقیم شما با طرف کار داریم علم اجمالی موندزه علم و سف آمد علم اجمالی مونجزه. طرف نه جامع هر جا اثر رو جا علم به جامعه بود علم به جامعه هست اما اگر این طور فرض شما علم به طرف مؤثره علم به خصوصیت. به حیثی که اگر علم بود یه بحق به صدیبشون یک اعتبار اگر علم نبود اعتبار میگر تصور میبوره نه این که اینجا حکم ظاهری باشه اعتبار عمل شد قانون عمل شد میگرد در این طور شد دیگه علم مجموعی موند جدید راست دارم میگیرشون اصلا شرط تنگیره ما از اول برسید رو گفتی علم با تو وقت نه برای خصوصیت تا علم آنها دیگه علم مجم سه بده سنگیده علم و همینه چون واقع ذات اثره نه علم شما بگون نه علم به جامعه علم به جامعه اگه اثر باشه ما بگوند چونه شده نه علم و خصوصیه این محضب نانیه به دحاظت کبرایی بحث بسیار لتیش است و بحث بسیار مشنگی و قوائد هم اختزاش میگه درست هم هست. کاملا صحیح جای بردیم این نمر کلام در نساله یک یعنی بار مثال من یک بار هم گذشتن یا استثناء است در استثنای این موضوع من 5 تومان دیگه آبو چه آب در داشتم جدا هم بودم اشتباه هم شد سوال بعد از خرج ملکیت من عوض شد بعد از خرج من مالک 5000 تومان بودم ببین حالا بعد از اختلاط من مالک یک 3 م ببین مالک 5000 تومانم حکم عوض شد شون مالکی استفرام نا این میگه اینجا که مالکی استفرام آبازی ها میگه نه مالک در هم هست، بس پس اونی که الان اینجا اشکاله بین طرف اینه بحث سرهیست نه اصولی سوالم خیلی واضحه به نظرمه من 5نج هزار چه کسی گذاشتم 5نج هاضزار تکونیک و 5 هاضافهانی مشخص. یکی هم در اضاز کنم نمی اضهایی باشید. نه همه اض. اینا خ سوال بعد از نمی تو تشریف شده کرد. اولی مشخصه که اول توی کی سو چه کار میشهد. حالا با هم محوب شد سال من هنوز مالی که 5 این کل آز و یا نه من مالکی یک سومم هم آیا در دراهم خلق پیدا میشه یا نه چون شرکت قهره قوامش به اختلافه آیا در شرکت مثل دراهم آیا اختلاف پیدا میشه لذا مرمونایین فرموده اگر مجرد جل عدم میز باشه یر جهل قرآ و تسالو نمیدار باشه شد بس؟ پس در کبرا محلت همه هیچ چایه نیست و این یکی از سوائل بسیار است که آیان متاخر ما در ظابطه تنجیز علم اجمالی گفتن ظابطه تنجیز علم اجمالی دینه باید اثر رو روی طرف رو واقع طرف حساب بکنیم نه علم به طرف اگر رفت رو علم به طرف روی اثر باید نمیشه. اما اگر اثر رفت روی واقع طرف مثلا این انا در واقع ملاقیه درم باشه اون انا در واقع نه در من اگر اونجا راست ولی علم اجمالی مونه این کبرا که ما ایشون فرمه درم هم این مورد که خلص درامن باشه از از از دو از درامن درامن که انسان حدیث سکونی قبول نکنه یا یا اگرم قبول کنه مثل ناینه حملش بکنه در اون سوایتی که به اختلاط نباشه از طور اختلاط قبول نکنه بگه برگرده به تشریف و مرحوم آزیا و مرحوم آی خویه اشکالشون ببروندارید اینه که انصافت اینجا خلص نمیشه اختلاط تو دراهن نیست یعنی شه اختلاط نیست یعنی همچنان که اول شما مالک 5000 هزار بودید مالک یک در هم الانم مالک یک در نسبت عوض نشد نه نسبت حکم عوض نشد اگر حکم با علم عوض شد تنجیز ندیده اینجا عوض نشود شما هنوز مالکیت ملاقات ملاقات لا ملاقات اخلاق یا اورث واقعی که بودیم این شید. مثل میشه یا اورث مثل قبوقا وام میشود خب نهیه هم همین میگه نهیه همین میگه میگه این خال پیدا رو در آمد هرگز ارزش با ارفن. نایین نیتون تو من رو همین داره شما اول مالک فرنی دارتان بودی بعد از یک سال مالک یک سومی. مالک یک سوم. و نظامشون میباد بگم به آده شکر مرحوم آزیابو برحوم آزیابو برحوم آزیابو اینطوره خیلی اینجا ادهی دیاری از علمای ما هستن فی گو که فیراح هستن من حاضر بر شما میگن تابوس بریم رواز داریم برواد عملی رو هم انصاف هم یه قواعدی که من زیر شرکت نیست از اینکه میگه یک درهم رو بدیم به صاحب در این اون یک درهم نپخشه این شرکت نیست دیگه یا قاعده انسان انصافی، یا اعتبار شرعیه مالکیه شرعیه ببینیم که مال روایت اگر روایت رو قبول کنیم چی مشکل نداریم اصلا بحثی نمیخواد بگیم نفس خاصی در مقام واضحه شده و اینجا تعهد شرعی و البته یه چیز هست خوب دقت کنید این پنج تا ای که من 5 تا 6 شیشه تو این مهم نیست استاد مطرح کردن ببینید در تمام اینا مشکل کجاست مثلا نگید نه در هم ببینید نه تو در هم, بیدیم، در هم بیدیم، این خودش مشکل درست نمی‌کنه اون که در قوسین مشکل درست چیه من بیام این دو تا دستوره جمع بکنم شخص می بیاد خود کاری که این فروی که میاد مشکل اونجایی که علم تحلیلی مثلا من حالات دیگه جدا بعد اینکه الان کلام ما اشاره اجمالی باشه وقت داد تمام میشه مثلا اگه من گفتم آ این کتاب مال آقای فلان میگن اون کتاب بدین واسه بعد گفتم نه این کتاب مال آقای شخص دیگه, دیگه میگن قیمت کتاب رو بون چون اقرار کرد سر به اقرار شخص میشه اقرار کرد مال اون میشه مال اون اقرار سر مالیت ارزش میشه چون یک کتاب که به نفر رسید ارزش داره اشکال در اینجا نیست خب من اقرار کردم که این آقا مالک این کتاب این در نتیجه اشکال نیست اشکال در اصطلاح وصولیه کجا خود به قضیه در اونجا ای کسی بیاد هم کتاب هم این پول بخ بگیره چون بالاخره می‌ذین که از این دو نفر مالک میشه و شما دیگه نه کسی من دور نره بشه روشن شد تمام این اشکالات پنج صورت مثلا اگر یک کسی به یکی گفت آ من من به تو این کتاب رو فروختم اون گفت: "باخره آجان شما این طرح رو فروختی اون میگه: آیه یه دوره وصاالتون رو گفتم به سر هزار شد." میگه: "نه آجان این طرحی بود." خب یه بعد میگه 200 مهر بره اینا نه این بگی نظره یا نه اون داره، هم این بگی نظره هم اون داره. وقتی به تهالو هم این قسن خورد هم اون قسن خورد، هاشم حکم الفرش میکنه، داره الفرش میکنه. میگه آقا این کتاب برگرده به م... این... به اصطلاح هر کدوم برگرد مالک قبلیش. این معامله نه اون کتاب منتقل میشه نه اینکه دوازده خرج اون در دوره بسات من با مثال میخوام بگن پیش خود منتقل میشه بعد میگه مالک قاضی ها اینجا اون خب مشکل نداره مشکل کجاست اینکه ببین دلار چه کار کرد چون دیگه بالاخره بی بینی واقعی شده یا بالاخره این کتاب وجایم ملک اون آقا شده یا کتاب یا این ترکه با مثال یا صندلی مثلا من اون آگاه شده یا او از زعفران میگه زعفران سواد به زفرخ تو کتاب ما فروختی. او شد میگن اگر حالا که هر دو باید داشتن و تا حالا خرسید، هر دو قطع میکنم. معامله پس میشه هم زعفران سواد به مالکش برمیگرده همون کتاب به مالکش بره. آیا مشکل حالا مشکل کجا میشه؟ مشکل اونجا میشه که سیبیات به این دو تا زعفران و, و کتاب جمع بکنه. چون میدونه یه آیا نایینی و دیگران مرحوم شیخ انصاری سعی که از یه جواب مثلا جواب دیگاری فرض بدن. طبیعیه تو این بحث بحث کجا مشکل داره که جمع جرم بین این دو تا بین دوتا نیست بین کتاب و بین ظن و صد ما نمی‌خوazim اینجا مشکل مرحوم استاد هم اینجا نا اتفاقاً نایینی سعی کن جواب بدن دقت بکنید سعی جواب بدن اما در آخر هر جواب تغییرات که من دیدم عادی مراجعه کنه. غالباً هم تسلیم اشکال کده چرا؟ خوده قرد بکنه چون ایشون میگه به این مثله پس اون روایت که آمد گفت نصف مال این نصف مال اون درست. اما روایت نه امد که یکیسی این تون رو هر بوتی نصف رو بخرید چه اشکال داره اینجا بکنیم حتی بقاید جالز نیست چون علم تفسیلی به خلاف بدون ما روایت این درباره تهالو که کرد؟ فرضاً هم کتاب برمی‌گرده به حسابش هم اون ضبط سو. اینجوری دو سال میگه دیدید چی سوالی میشه چرا کرد؟ علم تفصیلی به خلاف گذاشته. بگیم بله علم تفصیلی مؤثره، هر مادرش هم بکنه. یعنی مردم استاد در تمام این موارد تفصیلی موردی که من تو ذهنم هست، در حدی گفتن حالا برطرف گفتیم علم تفصیلی داخل پیدا شد، مشکل نداره، میشه بگین گوزید. شرع ربا لیا مدیریت کامله گفته نصف به این بده نصف اون بده دیگه روایت آمده یکی دیگه بیا حد نصف بخره روایت آمده گفته گفت این کتاب مال فلانی چه کتابون بده گفت کتاب مال شخص دیگه است تو بده بده روایت این مقدار رو دیگه نه هیچ شخصی بده این کار بکنه این میتونه بشین ملزمه این موارد هست و قاعده لا ایراد جان اون شده لیکن محلوب استاد خیلی هم داره چون بنای اصحاب بله اصلا بنای اصحاب بره همینه یعنی بنای اصحاب بره اینکه این اعتبارات نافذه نه اینکه این اعتبارات فقط اینکه اینکه اینکه از درده در در جدا بکنه دقت می ظاهر کلمات و ظاهر روایات این است که این مالک نصف اونم مالک نصف و یک نفر می هر دو نصف جمع بکنه ظاهرش اینه. نه این که توی این قسمت به قواعد مراجعه کن به تربیل ایشان انصافاً این مسئله که ایشون خلاف ظاهره میمونه مسئله اقرارمند من موسیقی که این مسئله رو توضیح دادن چون کبرای کلام ناینی بسیار نافعه و تو تنگید علم اجمالی رخن اساسی تنگید علم اجمالی این بس رخن اساسیست مثال محل اشکاله اما بس رخن اساسیست و خلاصه اون بس اینه اگر این در جایی در خصوصیت با وجود علم عدم علم اصلا اعتبار عرض بشه حکم وزی عرض بشه قطعا در اون جاها علم اجمالی مندیز نیست ما قائل کنیش از کردیم هر جا که اثر رو واقع علم اجمالی محسده هر جا که بین واقع و شما علم آمد محسده نه در جایی در خصوصیت مساراً في مسار محمد صلى الله